قلع مرخی، روزگار هرمی اثر سلمان امین با صدای آرمان سلطانزاده تهیه کننده دامون آزری کاری از گروه فرهنگی آوانامه با همکاری گروه انتشاراتی ققنوس بخش اول گفتم تازه قول چراغم که باشه یه آرزو دوتا خونه پره نه نکه این همه بعدشم دیگه زن و بچه که واسه آدم جونه نمیکنه کنه حسن گفت خره پول اگه پول داشته باشی همه اینا با هم میاد زن بچه همه چی ماشین برو به کارت حسن این هم از اون حرفاس یعنی چی که از اون حرفاز؟ یعنی چی نداره که؟ پول خوشبختی نمیاره همه هم میدونن برو از هر بیغیرتی که دوست داری بپرس مگه همه اسقر نبود اون همه پول پیدا کرد آخرش هم اونجور اسقر کیه؟ خیلی هم خوب اسقر را میشناخت اسقر مغنی را میگفتم پیرار سال سمت قزلقلعه موقع چاهکنی خورده بود به یک زیرخاکی توی یک چش به هم زدن زندگیش رو شد. زبان بسته از بس زخ زده شده بود چونان ریخت و پاشی کرد که سال نشده به خودش آمد دید همون یک زنی هم که داشت از چنگش در آمده و خداحافظ گفتم اصغر اصغر مغنی حسن گفت اوهو کی اون که از اولشم اوزاش بیریخ بود حالا هرچی اینا که دارم بهت میگم یه مشت واقعیت خالیه پول همه چیز نیست باور کن یک ساعت تمام همین جوری وسط کوچه داشتیم با هم کرکر می‌کردیم. خدایی ناکرده حرف حساب هم که سر هیچ کدام ما نمی شد به قدر خوب اعصابش تحریک شده بود که بی مقدمه گفت: خفه شما با, با کم زر بزن. به سرتان قسم دوزار به حرفی که بهش بودم اعتقاد نداشتم. اما حقش نبود که آنجور من را سنگ رویخ یخ کند. الان مدتهاست به این نتیجه رسیدم که آدمی مثل من هر چقدر خوبتری بزند به نظر مسخرهتر است. و این چیزیست که دارد خیلی آزارم میدهد من احتیاج دارم که هر چند وقت یک بار حرفوی درست حسابی سرهم کنم. حسن سرش رو انداخته بود و به اندازهی که دیگر نتوانم حقش را کف دستش بگذارم از من دور شده بود. چند روزی بود که همین طوری بود. دو کلمه حرف نامر بود که بهش می گفتی پاک قاطع می کرد. حرکات و سکناتش هم که شده بود عجیبا قریبا. چند روز پیش که بهش پیشنهاد دادم برویم ده به خانه خارجی رک رک تو چشمم نگاه کرد و گفت وقت ندارم باشه برای بعد آتش گرفتم به چده آتش گرفتم باز اگر میگفت پول و پله ندارم یک حرفی ولی گفت وقت ندارم به خدا این همین جمله را تحویلم داد آدم علاف تنها چیزی که دارد همان وقت است. حتی برای این که نظرش عوض شود چند تا فش سر پایم بهش دادم. نرفت. انگار کنید که تو گوش خر یاسین خوانده باشم شب دوباره تلفن کرد می جلوی سیروی در بیاید ولی میل داشت تلفن کند حسن گفت چی شد؟ چی چی شد؟ راجب به همون موضوع فکراتو کردی؟ هستی یا نه؟ فوری گفتم نه؟ جوری هم گفتم که بهش بر بخورد نه یعنی نیستی؟ یا هنوز فکراتا نکردی؟ کدوماش؟ پسره لندهور پاک یادش رفته بود که دم زهری چطور به جان فوش کشیده بود من اگر عشقم میکشید حق داشتم تلافیاش در بیاورم هر کس دیگری جای من بود برای نصف این چیزها هم کلی قشقرق به پا میکرد گفتم فکر نکردم ولی بعید میدونم چیا بعید میدونی؟ چیو بعید میدونی؟ تو الان ناراحتی هستن؟ حالت خوبه؟ آره من خوبم میخوام بدونم چی و بعید میدونی؟ ببین؟ منو رو نمیتونم روی این کار تمرکز کنم. قصد ادامه تحصیل دارم. ناراحتت که نکردم تو قصد ادامه تحصیل داری؟ آره؟ ولی تو خم به نیار باشه؟ به بگمونم حالا چندو خوب نیستا حالا آره کی خوب نیست؟ من؟ من فقط میخوام بدونم تو قصد ادامه تحصیل داری؟ پس الان ننه بزرگ منه یه ماهی که از مدرسه پرت کردم بیرون؟ اون یه مسئله انضباطی بود حسن اگه نبود من چیکار دارم با این کارا این یه کار پاره وقته هم به درست میرسی هم به پول تو چیه اونا به من بگو والا به تو که نمیتونم دروغ بگم راستیاتش این نونو خوردن نداره اینجور پولارو در میاری میخوری بعد که زن بگیری بچت کچوکاله در میاد حالا خربی بیار رو باقالی بار کن اصلا اگه اون همه پول در بیاری چیه؟ نه جدن بازم رود میشه تو روی وقی نگاه کنی چی میخوای به مردم بگی اینا همه مشکله حسن بیشوخی اینا همه مشکله یک کلمه از حرفایی که زدم سردر نیاورد اما میخواست وانمود کند که همه اش را میفهمد حسن گفت من خودم قبلا به همه اینا رسیدم تو نگران اوناش نباش فقط به من بگو هستی یا نه یک کلام یک کلام؟ آره نه نه او نگمه پس از آنو بعد دیگه قید همه چیو بزن این حرفش خیلی لشدرار بود سر هیچ و پوچ داشت سابقه یک عمرابطه دوستی من را به گند می کشید این حسن لندور همیشه همینطوری است حرف آخر را اول می زند یک بهانهای تراشیدم و جلی گوشی را گذاشتم این کار را کردم که مجبور نشوم فخش و فضیحتی چیزی حوالش کنم من دهنم چفت و بست درست و درمانی ندارد. وقتی لجم میگیرد ممکن است هر چیزی بگویم باور کنید. رفته بودم تو لک فکرش از مخم بیرون نمیرفت. گیر و گرفت های خودم کم بود. این حسن هم شده بود گزه قوز وال قوز. چپ میرفت راست میآمد حرف خودش را میزد. این آخری ها که دیگر کارش به تهدید و دریوری گفتن هم کشیده بود. سوزنش گیر کرده بود که باید دار دسته ای ما بشوی و هیچی؟ اگر بخواهید بدانید، من برنامه خاصی برای پولدار شدن در طول سی سال آیندم توی کلم نیست. حالا اصلا کوچول پا گذاشته بود بیخ خرم که اگر بیای پیش ما چقدر چقدر پول پارو می‌کنی و یک ساله بار خودت رو می‌بندی و کلی وعده سر خرمن خلاصه خلاصه‌پاشنه‌ش رو ور کشیده بود که یک شبش شلوارم را دوتا کند من مشکلی که با شلوار بیشتر نداشتم. اما ترسم از این بود که مثل حکایت اصغر ماقنی همین یک شلواری رو هم که داشتم از تنم در بیاورند. راستش همه همش هم این نبود یک کمی هم با آن جوانکی که برای معرفی کار آمده بود عادی مشکل پیدا کرده بودم اصلا بگذارید قضیه را رو از روزی که این پسره را دیدم تعریف کنم چون در اصل در همان روز بود که چشمم برای اولین بار به جمال لال شکیب روشن شد و همه این نکبت ها از همان جا می‌خوره.